ما مبحث خودمون رو در رابطه با بحث تشبیه تمثیلی خدمت شما داریم و بحث تشبیه تمثیل رو خدمت شما عرض می‌کنیم. ما گفتیم که تشبیه رو میتونیم به تقسیمات متعددی تقسیم کنیم تقسیماتی برای شما گفتیم مجبله این که تقسیم کنیم تشبیه رو به تمثیلی، مرکب و غیر مفرد یا تشبیه غیر تمثیلی، غیر مرکب و مفرد. که گفتیم تشبیه مفرد بیشتر از تشبیه تمثیلی است. و تا الان هم هرچی مثال خونده بودیم همه اون مثالها تشبیه مفرد بود و گفتیم تشبیه مفرد تشبیه که وچه شبهش هیئت صورت حالت نیست قطعا مشبه و مشبهن به هم هیئت و صورت نیست و بعد عرض کردیم خدمت شما چه تشبیه تمثیلی و چه شبهش هیئت صورت مجموع است یه مثال هم از قرآن برای شما زدیم که مثل الذين هم بالتورات ثم لم يحملوها مثل گفتیم چه صورت شأن هیئت درست شو مثل الذين هم بالتورات ثم لم يحملوها كما مثل الحمار يحمل اصوارا این كما این کاف ادات تشبیه گفتیم در تشبیه تمثیلی هیئت مشبه به هیئت به تشبیه میشه مجموعه به مجموعه مفردات تشبیه شدنشون به هم مد نظر نیست مفردات تشبیه شدنشون به هم مد نظر نیست اگرچه بشه حتی بعضی هاشونو به هم تشبیه کرد ولی مد نظر نیست قصد تشبیه کلی به کلی مجموعه به مجموعه است و گفتیم که اون وچه شبه هم که هیئت از هیئت مشبه گرفته میشه و هیئت مشبه هم به محصوفه یعنی مثل لذین همبلو توراد یه یهودی که به دنیا آمده رفته همبلو توراد اول موعد تورات آموزش دیده یاد گرفته سملم یحملوها هر چقدر از عمرش گذشته عمل به تورات نمیکنه. کنه آه؟ این آدم این آدم شعن و موقعیت و هیئت و صورتش که مثل الهمار یحمل و مثل یک اولاقیست که در یک بیابان میره کتاب های مفیدی روشه ولی اون خودش از اون کتاب ها هیچ بحلهی نمیبره تا اینکه که میفته و سقط میشه مجموعه به مجموعه میشه ها وچه شده چیه؟ اینکه کسی زحمت بکشه؟ اشیاء و مطالب مفیدی به دست بیاره زحمتی اما قائل به استفاده از اونها نباشه اونها رو که انلم یکون بگیره و به دلیل اینکه به اونها اعتقادی نداره عمل نمیکنه حالا دیگران اگرچه بشنون و عمل کنه اما او عامل به اینها نیست چون عامل به اینها نیست پس بنابراین از نفع اونها هیچ نفعی به او نمیرسه. این مجموعه هم. حالا برای همین ن هم گفتیم که اگر حتی شما یهودی رو بگیر میشه تشبیه کرد اینجا به قلاق مفلدن ما گفت و مگه اون کتابی که یهودی یاد گرفته کتاب آسمانی خدا رو میخواد تشبیه کنه به کتاب روی خر اصلا این مفلدات نه من... بعدم سانیان اصلا اینجا خر موضوعیت نداره یعنی اگر ناغه هم میگفت گفتفت هم میگفت فرقی توی اصل موضوع نمیکرد. ولی چون علاق تحریر بیشتری داره و چون الاق به قول خودمون باربرتره این رو ذکر کرد و مظهر حماقته به عنوان این دلیل ذکر کرد. پس بنابر این تشبیه هیئت حیعت به هیئت بعد قاعده درسو که دیدید با هم خوندیم یوسم ما التشبيه و تمثیلن اذا و شبه فیه گفتی یعنی صورت منتزعه گفتیم منتزعه یعنی ماخوذه صورت هیئت حالت چیزایی که میگن منتزعه من متعددن گفتیم متعدد هم یعنی اجزا هیئت مشبه و هیئت مشبهون غیر تمثیل تشبیه غیر تمثیلی میشه ازالم یکون وچه شبه که از هاده که وقتی که وچه شبه هیئت نباشه حالا گفتیم که ممکنه ورش شبه دو تا باشه سه تا باشه اشکال نداره اینجا مفرد در مقابل تصنیه و جمع نیست مفرد در مقابل مجموع از هیئته. بر حالا تشبیه تمثیلی توی زبان عربی بیشتره یا تشبیه غیر تمثیلی غیر تمثیلی اینکه یه ورش شبه دو تا وچه شبه باشه مفردی رو به مفردی تشبیه کردن این خیلی زیاده اما اینکه یه مجموعه یه هیعتی به یه هیات تشبیه بشه این معمولاً تو تشبیه‌هات ادبیانه بیشتر هست و تو قرآن هم فراوانه مثل همون مثل الذين هم لو بعد دو تا شعر برای شما یک و 2 بود توی امثله خوندیم که اولی اومده بود نور آقا رو تشبیه کرد در دریا دومی هم شب رو تشبیه کرده بود امر به موج دریا خب شب رو به موج دریا تشبیه کرده بود در چه چیز؟ بچ شب بعد دو تا بود ذکر نکرده بود یکی تاریک بودنش و دیگری هولانگیز بودنش وحشتانگیز بودنش خب مفرد به مفرد می شده شب به موج دریا بچ شب چیه دو تا تاریک بودن و هولانگیز بودن خب اشکال نداره. اون بانا او تشبیه شده به دریا در چه چیز تشبیه شده به دریا بگید در جود و کرم در جود و کرم تشبیه شد به دریا خود خب جود و کرم مفرد حیعت بگید نیست در شعر دومی کاف عداد تشبیه هست و لیلن کم در اولی نیست در چه هوه بحر او مثل دریاست در چی در جود و کرم سماه و جود این دقت کنید این مفرد به مفرد تشوی شده آه؟ باز مفرد به مفرد که میگه منظورمون این که هیئت نیست ولی ممکنه دو تا مشبه به دو تا مشبعون به تشویشه سه تا مشبع به یه مشبعون به تشویشه یک و دو و سه این توی این بحث از افراد خارج نمیکنه خلاصه طرفین تشبیه طرفین تشبیه هیئت باشد وچه شبه هم هیئت شود و محذوف این میشه تشبیه تمثیلی و شبه هیئت میشود و محض این میشه تشبیه تمثیلی طرفین تشبیه هیئت نباشد وچه شبه هم هیئت نخواهد بود این میشه تشبیه مفرد حالا اول و طرفین تشبیه و وچه شبه دوتا باشه سه تا باشه کاری به کار این ندارد. پس حالا مجموعه جمع ببندید مشبه, مشبه هم به هیئت باشد مجموعه باشد بقول با اون روز یادتونه گفتم سکانس باشه این سکانس به اون سکانس تشبیه شده جز به جز کار نداره وجه شبح هیعت میشه که از این دو تا مشبه و شبه به گرفته میشه و این و شبح محذوب هست این میشه تشبیه تمثیل کمتر هست اما اگر مشبه و مشبه به هیئت نباشه مفرد باشه حالا ولو اینکه که دو تا باشه سه تا باشه چون مفرد در مقابل تثنیه و جن نیست وچه شبح اون هم مفرده و شبح دیگه هیئت نمیشه مفرده حالا دو تا سه تا باشه اشکالی توش نیست. دو تا تا باشه اشکالی توش نیست. اینو بهش میگن تشبیه مفرد. حالا مفرد میگن غیر تمثیلی میگن، غیر مرکبم میگن. تمثیلی رو مرکب و غیر مفردم میگن. ولی اونی که مشهور هستش تشبیه به دو دسته تقسیم میشود. یک مفرد که زیادتره، دو تمثیلی که کمتره درست درستو و چرا کمتره چون به دلیل اینکه هیئت به هیئت تشبیه کردن و وجه شبه هیئت رو نظر گرفتن این یه مقدار سطحش بالاتر از سطح عادی تشبیهاته برای همین معمولاً اونهایی که ذهن برتری دارند این دو تشبیه رو بیشتر استفاده میکنن حالا نگاه کنید به این تشبیهی که الان مثال سومیشون به کار میبره مثال سبب میگه شعر مال ابو همدانیه شعر مال ابو فراس ابوفراس ابو فراس رو میگه هو خب ابو فراس الهمدانی کان فرید اصلهی فلعدب ولی کرم و شجاع یکانه روزگارش بوده در این چیزها و کان شعر روبو جنگیدن سهلا شعرش سهل و ممتنع بودان و یه هم اگه کسی خیلی ساده به نظر میاد اون کسی بخواد بگه نمیتونه سهل و ممتنع جای نظر قال از صاحب ابن عبادن صاحب ابن عباد گفته بود اشعره به ملکن و خود ما به ملک شعر با یه پادشاه شروع شد با شعر با یه پادشاه دیگه منظور از پادشاه اول امیر القیس پادشاه دوم منظور همین آقای ابو فراس همدانیست یعنی امرع غیس و عبا و کانال متنبیش حضر لهو و یخشاه متنبی توی جایی که این بود حاضر میشد و از این با خوف داشت بیم داشت. یعنی متنبی که خودش بزرگ شعره جلوی این دست و پاشو گم می کرد. و ما تقیدن سند سلاسمه و سب ان و سال سی یکی دو سال بعد از سیف و کشته شد خب نگاه کنید این الان میشه هیئت مشبه رو یه نقاشی کشید هیئت مشبه هم به همیشه یه نقاشی کشید هیئت به هیئت. تشبیه شد الان نگاه کنید بیت اول هیئت مشبه همی بیت دوم هیئت مشبه هم به رو میگه بیت اول هیئت مشبه بیت دوم هیئت مشبه هم به چه شبه هم که گفتیم هیعت یکی از این اجزا فهمیده میشه و محضوب خب آقای سیفت دوله به یک کاخی وارد شده این کاخ ها در جلوی خودشون یک زمین وسیعی رو داشتن که باغ اون کاخ بوده یعنی از تو اون باغه می آمدن می, می به اون کاخ آنها می تصور کنید دیگه یک مستطیل شکلی جلوی کاخ این است که در جلوی این کاخ هستش این باغ رو میخواد توصیف کنه حیعتش رو داره بیان میکنه انگار عکس گرفته مجموعه شد این باغ یه مستطیل کشیدیم خب این مستطیل یه دونه منحنی از وسطش رد شده این نهر آبیه که این باغ رو به دو طرف تقسیم کرده یه نهر آبی از وسط این باغ رد شده خب این نهر آب هم یه حالت انهنا داره منحنی اومده رد شده که معمولا کنار این نهر رو پیاده رو درست میکردن که اونهایی که وارد میشن میخوان از برسن به اون کاخ از کنار این نهر آب رد میشد. بعد این طرف و اون طرف این نهر آب یک قسمت زمین مسطحی گلکاری می‌کردند. گل و بوگل خودمون گیاه سبز و زمینش چمن، زمینش چمن، گل و گیاه این طرف و اون طرف پس الان شما حساب بکنید یه مستطیل یه منحنی اون منحنی نهر آب این ورش و اون ورش دو طرف باغ گل و زمینش هم چمن سبز یک چنین چیزی رو شما دارید میبینید ایشون میگه ولماعق یعنی این آب الفلام داره یعنی این نهر آب این جوی آب که گفتم به شکل منحلی هموند ولما و یفصل و جدایی میندازه بین روز زهر بین باغ گلها بین این روزه‌ها، این طرفش یعنی سمت راست و سمت چپش باغ گلهاست گلهای لاله گلهای سفید سرخ لنگهای مختلف گل روز و غیره انواع اقسام گلکاری ها شده مجموعه این نهر آب هم اومده اینو قطعش کرده دو طرفش کرده یف سلوبین الروز روز فش شدتین یعنی کناره باقی که در دو کناره این نهره یعنی انگار این مجموعه باقی یه نهر آب از وسطش به شکل منحنی گذشته که آبیاری میکنه دو طرف یفصل و فصل ها مفهول و مطلبه جدا میکنه جدا کردن یعنی جدا کردنی یعنی سرده پس این هیئت مشبه هیئت مشبه چی شد یه باغ گل به انوا و اقسام گل هایی که داره زمینش هم فهمیده میشه که چمنه حالا بعدم میگیم از کجا فهمیده میشه زمین چمن دو طرف باغ گل گل های مختلف رنگا رنگ یه نهره های از وسطش رد شد این یه مجموعه یعنی یه عکس اینوار از بالا یه عکس انداختن این مثل چی میمونه؟ این چیزی که آقای سیفت پسر عموش ابو فراس همدانی دیده این باغ رو برای ما نقاشی کرد نشونده میگه کبسات وشیه این مثل یک قالیچه زیوری میمونه قبلا می آمدن این قالیچه‌ها، که مخمل بود، اینها روش یه سری گلدوزی می‌کردند. یعنی گلها رو روش می‌دوختند. گل‌های مختلف با پارچه غیره درست می‌کردن سبز و غیر روی این می‌دوختند و دوخته می‌شد. گلکاری می‌کردند روی این مخمل. مثل یه مخمل سبزی میمونه. که گلهای قشنگی رو روش گلکاری کردن خب کبیسات وشگی جردد جردد یعنی شهرت درست شد یعنی بیرون کشیده یعنی سلد بیرون کشیده عید قیون قیون جمع غینه یعنی آهنگر صنعتگر صنعتگران بیرون کشیده است علیهه و روی این بساد نسلن نسل یعنی تیغه شمشیر برست یعنی تیغه شما این طرف یه عکس دیگه دارید یک مخمل سبز حساب کنید مثلا یه متر در مثلا هشتات سانت یه قالیچه مخمل متر در مثل هشتاس. بعد روی این رو کاملا هنرمندان اومدن گل کاری کردن یعنی گلهایی رو بر روی این دوختند گل مختلف شکل بعد یک آهنگرانی بودن صنعتگرانی بودند، اینها اومدن هنرشون رو گذاشتن و یه شمشیری رو درست کردن این شمشیر رو برای اینکه خوب دیده بشه آوردن گذاشتن روی این قالیچه دیدید تو این موزه ها و اینها مثلا یک کاردی یک شمشیری مال دوران گذشته است اینا رو روی مخملهایی های می‌گذارن که شما راحت بودید ببینید آهنگران اومدن رو... شمشیری رو که هنرشون رو نشون میداده چرا میگه آهنگر این کارو کردن چون سیقلش کرده باشن نو باشه. مثلا بله اگه شمشیر کار کرده باشه دیگه زر و برقش رو از دست میده. دیگه اون درخشندگی رو نداره. تو تشبیه ضعیف میشه. یک آه... یک شمشیر فولادین سیقل شده یه نوی رو آوردن گذاشتن رو این قارج. الان نگاه کنید اگر اون باقعا از بالای نفر عکس بندازه بذاره این برای بعد این قالیچه هم که این شمشیر رو تیغش روش گذاشتن اینم از بالای عکس بندازه قالیچه گلکاری شده که شمشیر بذاره. این دوتا عکس رو بینه نفرشون ای این دوتا چقدر به هم شبیه مثل هم آیا منظورش مثل همه یعنی باغ مثل قالیچه است؟ آخه کی میاد باغ رو تشبیح کنه بگید؟ حالی چه آیا نهر آب مثل شمشیره کی میاد بگه نهر آب مثل شمشیره کسی نهر آبو که به شمشیر تشبیه نمیکنه؟ ولی این الان این شعر رو گفته و این رو با هم ششبی که خب وچه شبه چیه وچه شبه اینه زمینهی مستطیلی شکل داریم که یعنی صفحهی مستطیلی شکل داری که زمینه اون سبز خوش رنگیه و بر روی آن انواع و اقسام رنگ ها پراکنده شده و یک شیء بر جذاب سیغلی آمده است این صفحه رو این صفحه دارای رنگارنگ رنگ رو به دو قسمت تقسیم کرد این مجموعه می شود شدن و نه بخوای به هم تشبیه بکنی قابل تشبیه بگید نیست چون ایش کسی نمیاد باغ رو تشبیه کنه به قالیچه یا نهر آب رو تشبیه کنه به بگید شمشیر که به جردت ایدل قیونه علیه نسلا پایین نگاه کنید. اشت جانب و نهر الوش نو آن من از سیاب المنگوشه یه نوع از پارچه های وش, وش ها یعنی زینت کرد یه نوع از پارچه های زینت شده یعنی گلکاری شده نقاشی شده منقوشه. جرد از یعنی سل یعنی شهر او کشید از غلط و قيون جمع قین و هو الاسلحه آهنگره یعنی اینجا منظور اون کسی که اصل احساسه چرا اصل احساس گفته چون اون بسازه نوع نوع سیغل داره و نفل حدیدت السیف حدیده یعنی تیغه تیره شمشیر یا تیغه تیر اون تیغه‌ای که سر تیر می‌گذاشتن یا تیغه روم یا تیغه چاقو سکین تیغه است نسل تیغه است حالا نسل و سیر یعنی تیغه شمشیر اینجا منظور تیغه شمشیره تیغه شمشیر شده یکی شمشیر سیغن شده یکی آورده گوشته بگید حالا توی متن کتابتون نگاه کنید تو بحث تشبیه تمثیل رو فهمید چیز سختی نیست اون بعد از آلیکه علت تشبیهین تالیه بعد از این نگاه کن به این دو تا تشبیه الان تشبیه‌ات تالیته به تشبیه‌ات زیر سه تا تشبیه تشبیه تمثیلی ذکر یک ها ابو فراسن حالا حالا میگن صورت میگن هیئت هم میگن یعنی شما یه جای الان میبینی حاله یه جای میبینید هیئت یه جای میبینید صورت یک دقیقاً میگن نشبه ها ابو فراس حال هیعت صورت مائل جدوله و قوه یجری بین روزتین که داره جریان پیدا میکنه بین دو باق که این وران ورش حلا همه حلا ما یعنی زیان همه زینت کرده این دوتا طرف این دوتا باق رو از زهر و ها به بدای علوانهی یعنی به علوانهی البتی با رنگ های زیبای خودشون منبستن در حالی که پخش شده بین الخضرت نازره این بسته یعنی انتشره بین الخضرت نازره منبستن بین الخضرت نازره منتشر شده بین سبزی شادابی که اون زمینه باغه که زمینه سبزه اون با خودمون چمنیه که اونجا هست فهلا همه از زهر این منبسن حال از داره زهر شکوفه که پخ شده بین اون زمینه سبز یعنی چمن این شرح حال مشدد به حال این به حال یعنی به حیعت به صورت متعلق است به اون یوشد به شب به حاله به حاله به حال صیف لممان به حال صیف لممان به حال سیفن لماین به حال یک شمشیر درخشنده به حال سیفن لمان، به حال سیفن لمان، به حال یک شمشیر درخشنده لا یزال و فی بریق جدته که هنوز پیوسته در اون درخشندگی نویشه لا و فی جده جدته یعنی اون شمشیری که هنوز تو نویشه چرا چون آهنگرا بود وقد جلدَهُ ائد القیون وقد جلدَهُ ها و کشیدند اون را آهنگران به بسات و یک قالیچه من حریر از جنس عبدشم حریر مترز ترز یعنی نقش و نگار شده زینت شده ترز الصوره یعنی اونو نقش یعنی و نگارش کرد تطریظ یعنی نقش و نگار این هیات مشابه که من توضیح دادم درست شو و عینا حیعت مشبه و عینات تو آن به و عینا وچه شبه وچه شبه که ات از اون ات شاعر يورید و ان یه تشبیه این آیا شما گمان میکنید ات از اون ات شاعر يورید و ان یه تشبیه این شما بگم شاعر مخاسی دو دو تا سه تا تشبیه درست کنه الاول اول الجدول به سیر مخاصد کنه اون نهر آب رو به شمشیر و سانی تشبیح و روزته و سانی روزته به ساعت المبشه کنه به غالیچه زیور شده لا نه نه اصلا نیست این نهولم یورد زالک قصدش این نیست ان ای نهولم یرید زالکه او قصدش این نیست که بخواد این ان نمایرید و ان یوشب به صورتن ببین کجا میگه صورت هم قصدش این بوده تشبیه کنه ان به سورة صورتن رآها به صورت تخیلها قصد داره تشبیه کنه یک تصویر رو که دیده تصویر اون باغ به صورت تخیلها به یه شکل دیگری که ذهنشون ساخته که یه پارچه مخملینی که روش گلکاری شده و یه شمشیر رو یه ده صنعتگر درجه یک آوردن گذاشتن روش کار دست خودشون رو نشون دادن به صورت انتفیرم یورید و انیوشب به حال الجدول میخواد تشبیر بکنه حال جدول رو صورت جدول رو هیئت جدول رو اون جوی. و هوه بین ریاض در حالی که بین باغهایی است که این ورون بین گل ها به حال مشبه و هیئت مشبه به این حال هیئت مشبه هم, به. حال, مشبه هم به. به حال سیف به حال اون شمشیر تیز و نو فوق البساز سات بالای یک قالیچه زیور شده از جنس حریر سبز و وَجُ شَبَ هُنَا لا مفرد، مُفْرَد وَجُ اینجا صورت هیئت مجموعه است مفرد نیست مفرد یعنی غیر صورت نیست حالا یکی دو, دو تا و تا وَ هَذِهِ این صورت این حالت مَأْخُوذَتُن او مُنْتَزَعَتُن مَأْخُوذ منتظه گرفته شده من اشیاع عدتن از چندین چیز که تو هیئت مشابه است هیئت مشابه و صورت المشتركه حالا اون هیئت وچه که حذف شده چیه و صورت المشتركه بین اض طرفین هیه عبارت است صورت مشترک بین دو طرف هیه وجود و بیاز مستطیل وجود یک بیاز سفیدی طول دار که شمشیر میشه و این نحرا وجود بیاز مستطیل دارای طول حوله اخضرارون که این طرف و اون طرفش سبزی خوشرنگی است فیه که در این سبزی الوان مختلف، هست. رنگ های مختلف نقش این مجموعه مد نظر ولی نمیخواد گلای توی باغو تشبیه کنه به گلای روی چمن چمنو تشبیه کنه به رنگ سبز مخمل و نمیدونم شمش اون نهر آبو به شمشیر اصلا مفرد به مفرد مد نظر نیست نگاه کنید بیت دوم رو یعنی مثال دوم رو. این اینم باز میتونید نقاشی کنید یعنی شما نقاشی به نقاشی دارید تصویر میکنید قالا متنبی فی سیف دولت، متنبی در مورد آقای سیف و دوله متنبی در مورد آقای سیف و دوله. قاله متنبی فی صیف ببینید لشکرها تو قدیم، الان هم البته همین آرایشو دارند. ولی خب قدیم خیلی راحتتر این آرایش دیده میشده. چون دیگه نیروی هوایی و این چیزا و اینها نبوده. همه لشکر بیاد نظام بودن، لشکر زمینی بوده، نیروی زمینی. الان لشگرهای فعلی امنی روی زمینیشون همی شکله چجوره؟ لشکرها تو قدیم بهشون مگادن خمیس چرا بهشون مگادن خمیس؟ چون از پنج مهور تشکیل شده بودن خوب اینو دقت کنی که اینه بفهمید 5 تا با قول خودمونم جوزه داشتن لشکرها. یه لشکری که توی بیابون داشت حرکت میکرد مثلا از حلب بره به جنگ رومیان این لشکر یک تلیعه داشت تلیعه لشکر که بهشون مقدمه الجیش هم میگفتند مقدمه لشکر تلیعه لشکر این یه تعدادی آدم های چریک آدم های خیلی اطلاعاتی و قوی بودن اینا جلوتر از لشکر حرکت میکردن مثلا صد نفر کمتر بیشتر اینا جلوتر اینا تلیعه لشکر بودن مقدمه لشکر بودن جلوتر میرفتن از لشکر چرا اینا جلوتر میرفتن؟ برای خاطر اینکه بتونن تشخیص بدن اطلاعاتی پیدا کنن که یه موقع این لشکر کمی نخوره یا موقع قافلگیر نشد شناسایی کنند و لشکر به واسطه اونها بتونه حرکت کنه و قافلگیر نشه. بعد از این قسمت مقدمه و تلیعه لشکر چیه؟ بعد از این مقدمه سه تا محور هست. یکی قسمت میمنه لشکره قسمت سمت راستشه که یه فرمانده خودشو داره بعد قلب لشکره وسط لشکر بعد میسره لشکره قسمت میسره قسمت چپ لشکر. میمنه میسره قلب بعد فرمانده کجا باید میسته تو قلب لشکر؟ که هم قسمت میسره یه دونه فرمانده داشته میمنه یه فرمانده داشته تلیه هم بازی فرمانده ای داره که جلو اداره میکنه پس یک قسمت جلو سه قسمت پشت اون و قسمتی که قلب لشکره این قسمت محکم تره یعنی حجمش بیشتره چرا سون قلب لشکر بعد از این سه قسمت که در موازات هم هستن یه قسمت هم بعد از اینها هست اون قسمت رو بش میگن عقبه لشکر که اون قسمت معمولا اون کسانی که کار الان میگن تدارکات کار تدارکات رو انجام میدادن شمشی ها رو تیز میکردن بغغزار رو تهیه میکردن اسفار رو تیمار میکردن مجروهین رو تیمار میکردن کسانی بودن اونها در واقع قسمت عقبه لشکر تدارکات تداروکات بودن پس اگر شما بخواید یه لشکری رو نقاشی کنید یه دونه دایره کوچیک جلو میکشید این مثل تلیه لشکر سه تا دایره پشتش اون میکشید دایره وسطش بزرگتر قلب لشکر بعد دایره سمت راست میمنه لشکر دایره سمت چپ میسره لشکر بعد بعد از این ستا یه دایره دیگه میکشید، ها و این رو می چی؟ می نمیسید لشکر حالا شما یه لشکری رو روی زمین ببینید داره حرکت میکنه، این شکلی داره میره جلو بعد نگاه کنید این قسمت میمنه و میسره لشکر این توی بغل خودمون درگیری ها و توی برخورد ها. این قسمت میمن و میسره همیشه در حال حرکتن یعنی اینها معمولا توی قسمت و میسره جوان ترها و خیلی آدمهای کابو میذاشتن اینها مثلا اگر به قلب لشکر حمله میشد بگید اینها از دو طرف میآمدن به قلب به کمک لشکر اگر از سمت چپ و راست حمله میشد اینها حرکت میکردن باز میشد یعنی اینها همش در حال بگید رفت و آمد بین انتهای میمنو و میسره و قلب لشکر بودن اینها می آمدن به طرف قلب لشکر می رفتن اقل می در می رفتن این در حال جنگ بودن پس شما یه سحنه جنگی رو می تونید برای لشکر در نظر بگیرید میمنش جلو سمت راست میسرش سمت چپ در حال رفت و آمد و حرکت قلب لشکر ثابت اون قسمت تلیعه لشکر جلو و عقبه لشکر عقب او خب. این یه لشگر بعد نگاه کنید فرض کنید لشگر رو شما از بالا عکس انداختید یا از بالای سکانس فیلم ازش گرفتید که بهتره یه سکانس فیلم گرفتید بعد میایید و یه فیلمی هم تو راز بقا میبینید میبینید یه اوقاب عقاب که تیز پروازه بالهاش هم پهنه این اخاب در سطح آسمان داره حرکت میکنه بال میزنه بالاش میاد طرف بدن باز میشه سرش کشیده دومش هم پهن شده و داره حرکت میکنه به طرف جنر نگاه میکنی این لشگره رو نگاه میکنی سکانسش این ای هست این لشگر مثل اخاب میکنه حالا اینجا شما این لشکر رو به این اوقاد تشویق کردین میخواد بگید مثلا تلیه لشکر مثل سر اوقاد بالهاش مثل میمنه و میسر از دومش مثل عقب اینه نه اصلا این نیست چون هر کدوم از اینها رو بگید مثلا تلیه لشکر مثل سر اوقاد است کسی اینو تشویق نمی‌کنه که مچ محدا چه قابل تشویق اما وقتی این سکانس با این سکانس دوتا داره کنار هم دیده میشه میگه این دو خب چه دارن اینکه یه قسمت کوچکی در جلو دارند اینکه دو تا قسمت پهن در کناره ها دارند و این دوتا قسمت کناره ها به طور منظم باز و بسته میشن و در حال حرکت اینکه یک قسمت وسط ثابتی داره و اون قسمت اصلیشه و این مجموعه رو اون قسمت سر و دو طرف رو داره اداره میکنه سرگای اوقات کشیده میشه عقب و جلو میره میمنو میسره باز و بسته میشن داره اداره و اون قسمت عقب هم بگید توسط این داره اداره میشه مجموعه به مجموعه تشبیه شده و اصلا قصد تشبیه مفرد به مفردش وجود ندارد وجود ندارد حالا نگاه کن بخونم و قال المتنبی فی سیف دولت متنبی در مورد صیف و و لشکرش اینطوری گفته یهوزو یهوزو یعنی یوهر حرکت میده در آن حز یعنی تکون داد تهر لکر یعنی تکون خورد تهر لکر یهوززل به حرکت در میاره لشگر خودش رو یهوززل جیشه هول جیش لشگر لشگر تو به حرکت در میاره در اطراف تو یعنی تو وسط لشکر ویزدی لشکر دو طرفش رو تکون میده جانبی ای مفعول یه لشکر تو دو بالش رو دو جانبش رو در صورتی که تو در وسط اونها هستید به حرکت در میاره خب این مقدار که گفتن خب معلومه یعنی دومش رو هم به عقب میده سرش رو هم به جلو میفرسته بالهاش رو این لشکر دو طرفش رو به حرکت در میاره این هیئت مشبر لشکر تو دوبال خودش را به حرکت در میاره در اطراف تو خب معلومه یعنی سر و اون تلیه و مقدمه و تدارکاتش عقبش رو هم بگید بالا و پایین میبره و تکون میده و وقتی بالا رو میده این هم هستی. کما حالا داره میگه کما نفر یعنی کما حزد همونطور که تکوم میده جناحی ها دوبال خودش رو اواقاب تو حرکت کردن دوبال خودش رو تکنه چرا با گفت حالا میتونست گنجش بگه گنجشکم بالا رو اما اوهااب انتخاب کرده که اون سرعته و اون رفت و برگشته و اون اوج گرفتن و اون منظم بودن توش مظهره مذهره خیلی خیلی روشن و واضحه، کم نفس از ها، همونطوری که به حرکت در میاره دوبالش را این اقاب آسمان درست شد حیعت به حالا وچه شبه چیه وچه شبه گفتم قسمت اصلی ثابت دو کناره متحرک اونم حرکت های منظم رفت و برگشتی و یه قسمت مقدمه و ای که با این وسط تنظیم میشه و کاملا، با این وسط در حال نظم و ترتیبه الاغاب میگه تایرون تا کاسر پرنده شکاری معروف به ول، منعه معروف است در بین مردم به اینکه بلند پرواز و خیلی خیلی برای خودش تکبر داره غرور داره منعه و یوز رو به فی الفیزالک در این بلند پروازی و قرور ضرب المثاله میگن مثل اوهاب میمونه فیوها لو امن اومن اوهاب جهر یعنی بلند پروازتر و متکبرتر از و آسمانه و هو خفیف الجناه خیلی بالش پرش پرزدنش و حرکت پروازیش تنده سریع و تیر پرواز تندید حالا نگاه کنید ببینید میگهان شما میتونید این دو تا سکانس رو ببینید یه سکانس لشکری که داره توی بیابان حرکت میکنه و سیف و دوله این میمنه و میسره با مقدمه و معخره رو داره تنظیم میکنه و میبره جلو میاره یکی هم که از بالا فیلم برداری کردن با پهباد می که این بالاشو میزنه و سرش کشیده بود دمش پنج شده و این کاملا تنظیم داره حرکت میکنه حرکتش کاملا منظمه نگاه کنید چی میگه یوشبه ها و یوشبه ها المتنبی سورت هیعت هالت یوشبه ها المتنبی سورت هیعت حالته جانب یل جش سورت دو طرف لشکر و میمنت و میسرته قسمت راستش و چپش و سیف و دولت بینه هما. سیف و دوله هم اون لشه و ما فی ما من حرکت و استراب و آنچه که در این دو طرف میمن و میسره هست که به دستور سیف و دوله انجام میشه در حرکت و استراب میرن و میان آن جمع میشه باز میشه تشبیه کرده البته این قدرشو داره میگه میمن و میسره و قلب لشکر و اون قسمت سر لشکر و اون قسمت معفقره عقب لشکر هم هستی از مجموعه فهمیده میشه به صورت احابه تشبیه کرده به هیئت یک عقاب تنفذ و جناحی ها و تو هما که به حرکت در میاره دوبالش رو و اونها رو به به حرکت میده تنفذ و جناحی ها و توحرک و هما اونها به حرکت در میاره خب سر و دومش هم که تنظیم میشه با این و سن شبه هفنا لایس هم مفردن و شبه هم مفردن نمیخواد میمنه لشکه رو تشبیح کنه به بال اخواب که مقدمش هم تشبیح بشه به سر اوقاب این نیست و سن شبه هفنا لایس هم مفردن که نهو منتظه هن من متعدده ولی گرفته شده از چند تا چیز اون چند تا چیزی که تو مشبه هست مشبه به. تو مشبه تو بلم مشبه چند تا چیز میمنه هست و میسره هست تو قلب هست و سره اون تلیعه لشکر است و عقبه لشکر، تو مشبه تو مشبه هم به هم سر اقاب هست و بالش هست و تنه او هست و قسمت دومش اینا مجموعه از این متعددها ها گرفته شده اون چیه؟ و قبط وجود و جانبین اینه یه شیء ثابتی باشه دوتا جانب متحرک داره و دوتا قسمت بالا و پایین هم داره که با این تنظیم میشه و هوه وجود و جانبه این, این فی حال حرکت و تموج در حال حرکت رو تکون خوردن آه رفت و برگشت تموج این وچه شبه و هیئت وچه شبه هم ذکر بگید نشد درست؟ حالا مثال سوم یه نکته توش هست مثال سوم رو برای شما ذکر میکنیم برای شما یه مثال دو مثال سه مثال همینطور ما بزنیم خب ده تا مثالم بزنیم بازی آزده همی هست شما دیگه اگه فهمیدی فهمیدی مثال سوم آقای ازدری یا این شاعر داره یک هیئت مشبهی رو با یه هیئت مشبهم بهی مقایسه میکنه ببینید تو دوتا مثال اول یا حتی اون مثال قرآنی که من زدم براتون مثل اللذین هم التورات شما تو اون قرآنی که اصلا مثل به معنای هیئت و حالت رو میدیدید تو این دوتا مثالی که تو کتاب هست قر خب، هیئت هست اما دیگه لفظ مثل رو نداره ولی مثل هیئت با یه مجموعه ای شما می بینید. یعنی توی مثال اول بیت اول هیئت مشبه بود بیت دوم هیئت هم به توی این مثال متنبی مصره اول هیئت مشبه مصره دوم کما هیئت هم به اما توی این شعر آقای سریع و رفا شما از هیئت مشبه فقط یه رو دارید یه ما فکر نبونی این الهلال مفرده یه کلمه است پس بنابراین این, این تشبیه تشوی مفرد غیر تمثیبیه نه این الهلال خودش یه حیعته کالاچه نگاه کن ببین میگه کأن الهلال گویا این هلال کدوم هلال رو نشون میداده هلال ماه رو هلال ماه شب اوله خب وقتی نشونش میده تو آسمون هلال ماه شب اول رنگش چیه رنگش رنگش ای فامه رنگش رنگ نقرهی خیلی روشن و قشنگ هلال ماه بعد این هلال ماه که رنگش ایه هلال ماه که رنگش نقلهیه تو چه زمینه ای هست؟ تو چه زمینه ای؟ زمینش نگاه هلال ماه رو که میبیند؟ یعنی مثلا شما میخوان ببینن فردا ایدفتر هست یا نه هلال رو که میرن میبیند؟ هلال رو بعد از اینکه خورشید غروب میکنه تا زمانی که آسمان تیره بشه، تاریک بشه اون موقع اون جایی که خورشید غروب میکنه میره پایین دیگه غروب میکنه بالای اون میشه هلال رو ببینی یعنی جاییه که دنبال هلال باید بگردی اونجا تو قسمت غرب غرب آسمان جایی که خورشید میره پایین و دیگه غروب میکنه وقتی غروب کرد از اون لحظه تا موقعی که تاریک میشه اون موقعیه که شما میتونی هلال ماه رو ببینی اگه دیدی هلال رو شد. شکار کردی و میشه عید فطر اون موقع فردان دیدید دیگه اون موقع عصر قبل از بقول خودمون از آن مغرب اون موقع یعنی قبل از تاریک شده اون موقع آسمون چه رنگیه کبوده آسمون رنگش بگید چه بوده اول آقایی زرگا پس هلال ماه توی زمینه زرگا دیده میشه خب بعد هلال ماه را اگر دیده باشید در مقابلش حالا اینم بدونید هلال ماه یعنی آسه کلا ماه در مقابلش یه مجموعه ستاره کنار هم هستش بهش میگن خوشه پروین ستاره سرعیه خب معلوم که حتی شما تو خیلی از این پرچام ها میبینید یه هلال و یه ستاره جونش حالا اگر شما این هلال آسمان رو عکس بندازید این هلال آسمان رو عکس میندازید که ثابت کنید شما هلال ماه رو دیدید اگر شما این هلال عکس بندازید یه عکسی انداختید در طول مثلا فرض بفرمایید که 20 سانت در 15 سال یک کارت خوب این هلال ماه چیه؟ یه زمینه زرقا هلال نغری شکل و یک ستاره بالای اون و این ستاره هم نورانی و تقریبا فان این عکسیه که شما از آسمان هلال ماه انداختید این که هلال همینه این حیعته این هلال آسمان وقتی میگه این هلال آسمان یعنی با این زمینه کبودش و با این ستارهی که مقابلش مثل چی میمونه؟ این هلال رو شما عکس میندازید عکستونو رو چاپ میکنید میذارید رو میزتون بعد کنار این این شابلون درست میکنن برای اینکه مثلا بچه ها حروف رو بشناسن نون، کاف، زاد، ساد یک شابلونی رو هم از حرف نون دادن یک خطاطی نوشته اما خطات نون رو با نقره درگرده یعنی یه صفحه نقرهی نون بریده و این نون نقرهای رو گذاشته روی یک شابلونی که رنگش رنگ کبوده زرقا شما نگاه کنید می‌بینید یه عکس انداختید از ماه یه اینجا شابلون جلوتونه یه صفحه مثلا فرض کنید که بیشتر بیست. روش یه دونه حرف نون با نقره بریده شده خطاطی شده گذاشته روش یه صفحه نگاه میگه این دوتا چقدر شبیه همه حالا این دوتا این دوتا عکس چقدر شبیه همن یعنی شما خود آسمون مثل این صفحه شابلونه یا میخواید بگید بدنه هلال ماه مثل بدنه نونه یا میخواید بگید اون ستاره سرعی مثل نقطه نونه اون ستاره سرعی مثل نقطه نون اگه باشه مثل نقطه زادم هست درست شده نه اصلا مفرد به مفردش مد نظر بگید نیست ولی مجموعش وقتی این عکسی که از آسمون انداختی با این شابلونو بذاره کنار هم ای این دوتا شریعه هم خب در این چیه در این که هر دو یک زمینه زرقاء دارند هر دو یک شیء منحنی شکل نورانی براغ دارند و هر دو یک شیء جمع شده نقطه شکل نورانی در بالای خود دارند یعنی اینه وچه شبه این مجموعه که شما احساس میکنید حالا نگاه کنید میگه یه الهلال نگویم مفرده این هیئت مشبه یعنی که انده حیعت الهلال فی وسط سماق عند غروب که اندال نون و لجین نون و لجین مثل خاتم و فزتن اضافه بیانیه است یعنی نون من لجین لجین یعنی نغره نون است از جنس نقره در اغت این جمله صفت نونه که غرض شده افتاده فی صحیفت زرقا در یک زمینه کبود اینو ین هیئتشو گفت نون لجین نونی از جنس نقره که افتاده بر روی یک صفحه زرقا خب اون نون که هست نقطه داره او آسمان هلال هم بالاش سطا اینا دوتا شابلون و این تصویری که من از آسمان از هلال ماه گرفتم شبیه آمد نگاه کنید میگه که وفل بیتل اخیر یشبه ها از سریج یا تشبیه میکنه سری و رفا حال الهلال حال هلال رو هی اتل هلال صورت الهلال ابیزن ماء که خیلی خیلی درخشنده هست و سفید مقوصن و قوسی شکل و قوفه سماع زرگا و حالان که در وسط آسمان کبوده سرست شد و نجمون یتلع لعفوقه اونطوری هم باید دیگه و یه ستاره هم که اسمش سوریه است در بالای او داره میدرخشه یه حیعت مشبه تشبیه شده به چی؟ به حال نونن به هیئت نون به هیئت یک نون من زتن از نقره قارغتن که افتاده از غرض شده فی صحیفة زرقا در یک زمینه کبود یک صفحه کبود فوجه شبه هنا وجه شبه در اینجا مفرده و وجه شبه هنا صورة منتزعة من متعددن وجه شبه در اینجا یک هیئتی است که گرفته شده از متعدد و هو وجود شیء عبیزه و اون عبارت است از وجود شیعی سفید مقوس قوسی شکل فی شیء عذرقه در یک زمینه کبود و شیعانیت لعله و امامه و یه چیزی هم در مقابلش داره پرتفع شنیم کن نگفت پس اجزا داره هر کدوم فحاضه الثلاثه سلاسه این ست تشبیه که شما دیدید حتی بچه شبه هم جلد فهمیدید دیگه بچه شبه هم هنه من متعددن و خوبه وجود شیء عبیزن مقوص این فیشه این و یه شیه نورانی هم مقابلی میگه فحاظ تشبیحات و سلاست و این تشبیحات سگانه علتی مرد بک که یکی هم من گفتن مثل لذین هم بلد مل من جمعه علتی بگ بک ولتی رعید و این تشبیحاتی که تو دیدی ان وچه شبه فیحا و وچه شبه داره شعیعت صورت حالته مکونتون من اشیاء عدتت که تشکیل شده از چند چیز یسم ما کل تشبیهن فیها تمثیلا هر تشبیهی که این شک باشه ها یسم ما کل تشبیهن فیها هر تشبیهی که در این مثال ها شما می‌بینید نامیده میشه تشبیه تمثیلی و تشبیه مرکب هم بهش میگن تشبیه غیر مفرد هم میگن ولی عمدتا اون اسمی که مقبول است و همه ازش نام میبرن تشبیه تمثیلی است. خب ما درسمون تموم شد الان نموزج میخونیم باز توی نموزج دو تا تشبیه تمسیلی میگه یه غیر تمثیلی ببینید توی متن توی متن دو تا تمثیلی، سه تا تمسیلی گفت دو تا غیر تمسیلی یعنی یک و دو غیر تمثیلی بود که اون شخص تشبیه ببهر شده بود موج دریا، شد او تشبیه شده بود این دوتا بعد سه تا هم تشبیه تمثیلی آورد یکی اون باقی که تشبیه شد به اون قالی که اینکه آهنگره شد یکی هم لشکر سیف و تشبیه شد به اوها و یکی هم هلال ماه تشبیه شد به نونی از جنس نوره باز توی نموزج ها دو تا تشبیه تمثیلی میگه که یک و سه یه دونه تشبیه غیر تمثیلی میگه که دو. این مثال ها نباید شما رو گول بزنه که فکر کنید تشبیه تمثیلی در زبان عربی بیشتر از تشبیه بگید غیر تمثیلیست نه نه تشبیه غیر تمثیلی بیشتره تشبیه مفرد بیشتره ولی چون بحث ما بحث ما در تشبیه تمثیلی مثال ها و نموزج تشبیه تمثیلی بیشتر شد یکی درست شد. و یکی هم از اول کتاب ما هرچی تشبیه خونده بودیم تا امروز همه از نوع تشبیه مفرد بود مثال خیلی زیاده همه اون مثال و شعرهایی که خوندیم همه از نوع مفرد بود و اگر شما میبینید اینجا تشبیه تمثیلی تو این درس، تعدادش بیشتر از غیر تمثیلی ذکر شده چون فقط و فقط برای خاطر اینه که درسمون در تشبیه تمثیلی است حالا چرا تشبیه تمثیلی تعدادش کمتر از اونه چون ذهن بقول خودمون کارآتری رو می‌خواد اینکه کسی رو به شیر تشبیه کنن مفرده معمولا معمولاً همه آدمهایی این رو انجام میدن و تشبیه مفرد خیلی دست چون ذهن کلی نگار نمیخواد اما در تشبیه تمسیلی شما باید مجموعه ببینی سکانس ببینی هیئت ببینی و هیئت تشبیه کنی این زیباتره خیلی و مقدارش هم نادرتره به دلیل اینکه هر فردی قادر به بیان اون نیست حالا بیایید سر نموزش ها اولی ابن المعتز که یادتون باشه من گفتم ابن معتز شاعر تشبیه هم هست قبلا هم یک خرشیدی رو به هنگام غروب تشبیه کرده بود به دیناری که تازه زرد کردن مفرد به مفرد تشبیه کرد خورشید رو به هنگام قروب با قید غروب تشبیه کرده بود به دیناری که تازه حداید زراب اون رو زربش کرد. جلت خو حداید و زرابی که انشم سلمونیرت دینارون جلت خو حداید و زرابی قبل هم الان اینجا یک تشبیر تمثیلی میاره ببینید اون شکلی که من به شما گفتم از هلال ماه بکشید یعنی عکس بندازید اون عکس رو تو ذهنتون دارید که گفتیم یه صفحهی میشه کبود رنگ هلال ماه بعد اون ستاره سرعی که بهش میگن خوشه پروی اون هم در مقابلش خب؟ این تصویر دارید دیگه این تصویری بود که ما از آسمان گرفتیم خب؟ این آقا اومده این آقا اومده این هیئت رو تشبیه کرده این هیئت هیئت حیعت ما که خوشه پروین در مقابلشه تو صفحه آسمون اینو تشبیه کرده اونجا اینو تشبیه کرد بود به چی به یه شابلونی که بگید حرف نون نوره نوشته شده بود روی اون صفحه که بوده اینجا حیعت مشبهان به عوض میشه اینجا تشبیه کرده به هیچ دیگه فرض کنید فرض کنید یه نفری خیلی خیلی گرست نزد حریصه یعنی خیلی گرست نگی بهش فشار آرد یه خوشه انگوری ده سانت بالای دهانش گرفته شد خوشه انگور با قبه های خیلی لوس. شد ده سانت بالای دهانش گرفته شد اینم دهانشو چون گرسنه نه هستش و خیلی طمع داره دهانشو به طور کامل باز کرده خب که این خوشه انگورو بخوابه میخواد بپره هوا و این خوشه رو بکشه تو دهانش تونستی تشخیص یه نفر یه نه خیلی هم حریصه انگور هم خیلی دوست داره خوشه انگورو گرفته ده سانتی دهان خودش دهانشو تا آخر باز کرده میخواد این رو بکشه تو دهانش شما اگه اون قسمت لبهای این رو که باز کرده اینطوری، اون قسمت لبهای این رو عکس بندازید با این خوشه انگور با بقیه مهم بشه این فقط قسمت اون لب و از چونه اون به بالا تا دم بینیش و قسمت این دهان بازش و اون خوشه انگور رو عکس بندازید یا عکسی اینطوری انداختید یه این دهان بازی که خوشه انگورو رو میخواد این عکس هلال ماه رو نگاه میکنی این هم میکنی. این دوتا چقدر شبیه همن. آیا شما اینجا میخواید بگید که ستاره سرعی خوشه پروین مثل خوشه انگور میمونه؟ آیا حالا اینم هم هیچ آیا میخواید بگید اون هلال ماه مثل قوس لبه یه نفریه یه که دهانشو باز کرده اصلا مفرد به مفردش نظر نیست ولی این دوتا تصویر رو که عکس بگیرید خیلی شبیه همن دوتا تصویر درست کنید و اینها رو به یه نفر نشون بدید میگه این دوتا شبیه همن شبیه همه یعنی هیئتشون شبیه به همه یعنی چی؟ یعنی یک شیعی داریم غوصی شکل که به دنبال یک نقاط متراکم نورانی شکله که اونها رو به داخل خودش میخواد بکشه اینو میخواد بگه حالا نگاه کنید قاله ابن المعتص دولت و سیام گفته مردم حکومت ماه رمضان تموم شد خب حکومت ماه رمضان کی تموم میشه موقعی که بگو مردم هلال ماه رو می ماه شوالو رو می بینن فردا میشه عید فطر میگه قدیم قصد دولت و سیادت دولت حکومت ماه تمام شد ماه رمضان حکومتش تمام شد و قد حالا یه نفر باید بیاد بشارت بده که اون حکومت سقوط کرد و به میگه وقد بشرت سوق مل هلاله به ایدی و داره بشارت میده این لاغری و مریضی این هلال ماه داره بشارت میده این لاغری و نحیفی هلال ماه این مرض هلال ماه این ماه نحیف داره بشارت میده بالعید به, به اینکه فردا ایده یعنی چی یعنی انگار این ماه در زندان این این هلال ماه در زندان این ماه رمضان بود حالا ماه رمضان سقوط کرد این هلال آزاد شد این آمده داره فریاد میزنه مردم دیگه دولت ماه رمضان تمام ماه رمضان از بین رفت فردا ایده یعنی ماه رمضان حکومتش از بین رفت کی داره اینا این زندانی ماه رمضان زندانی ماه رمزان کیه؟ این هلال اومده داره به همه ما تو آسمان بشارت میده فردا ایده است خو پس هیئت مشبه چی شد هیئت مشبه هلال ماهی که تو آسمونه با اون شکلی که من گفتم که خوشه پروینم مقابلشه رنگ زرقا هم داره این تصویر حالا نگاه کنید میگه یتلو از سریا یتلو یعنی دنبال میکنه یتبا دنبال میکنه این هلال ماه از سریا ستاره سریار این حلال ماهی که اومده بشارت میده فردا ایده این داره دهانشو باز کرده داره تعقیب میکنه دنبال میکنه ستاره سریار، این حیعت مشبه یعنی همون تصویره کفاقر فاقر یعنی فاتحه باز کننده اما باز کننده دهان کفاقر شرحه مثل باز کننده هرریسی کف دان شرح مثل بازکننده دهانی که شرح حریسه خیلی گسم است یفت تقفه دهانشو باز کرده نه اکن آن بودن خوشه خوش برای اینکه بخورد خوشه انگره این طرف تصویر دیگه که شما از لب‌های یه نفر عکس می‌اندازید که دهانش رو کامل باز کرده و یه خوشه انگور بالای اون گرفتن میخواد این خوشه انگور رو بپره بگیره با دهانش شد کفوا قرن شرحن یفت یفتحه فاق گشوده است دهانش را فاهو. مفعول یفتوز از افعال چه اسماء خمسه است که نصبش با نه اکل گشوده است نهانش نه رو برای خوردن انگور کاری نگاه کنید از سوریان نجوم و مجتمعتون توش به حال انقوده ستاره های کنار هم که شبیه به خوشه انگوره وفق رفاهو یعنی فتحه ها خب این تصویر به این تصویر الان نگاه کنید هیئت مشبه چیه صورت الهلال و یا امامه هیئت هلال ما با اون رنگ و موقعیت و صفه آسمان و اینا همه و ستاره سریان با اون خوشه پرمین همه مشخصاتش در مقابل تشبیه شده به صورت و شرحن صورت یک انسان حریص فاتح فاه که دهانش رو باز کرده نه حکل و انقوده نه برا کردن انگور. خب وچه شبر چیه؟ وچه شبر میگاه کنیم صورت و شیعن شکلی داریم قوسی شکل یطفا و ان آخر که دنبال داره میکنه یه چیز دیگری رو که اون چیز دیگر مکبونن من اجزاین سغیرتن بیزاین که اونی که این دارن دنبالش میکنه تشکیل شده از اجزای کوچکی که بسیار روشنه و کنار هم واقع شدن. و اینلا قصد نداره ستاره سرعی یا رو تشبیح خوشنگور کنه یا هلال ماه رو تشبیه به لب باز شده بکنه اصلا این مفرد بود ولی اکثاره که رو بذاری کنار هم کامل مثال سوم رو ببین این هم تشبیح تمثیلیه آنش شاعر شاعر گفته. یا آقایی رو داره میگه این آدم بسیار زیبا رشید قد بلند زیبا شجاع بر روی اسب در میدان جنگ شمشیر رو هم به دست گرفته و این شمشیر رو تو گرد و خاک میدان جنگ که آسمان میدان جنگ تیره و تار شده تاریک شده این شمشیر رو میچرخاند و میرود حیعت مشبه ها بگیرید مثل قمر ونی آشب در میدان جنگ این زیباروی بلندقد شجاق بروی بر است، گرد و خاک هم آسمان رو تیره و تار کرده این شمشیر آخته شمشیر سیق شده یه سفیدی رو توی این گرد و خاک میچرکنه چون شمشیر تو تاریکی که به این برگ میزنه این برق میزنه و شمشیر رو میگرداند و بالای سرشو داره حرکت میکنه به سوی دشمن این حیعت مشبه روی زمین گرد و خاک تیره میدان جنگ یک زیباروی شجاق بر روی اسب، شمشیری به دست این شمشیر رو در این گرد و و تاریک میچرخونه برق زنان میره این هیئت مشبه. میره تشویش کرده به چی؟ میگه سرتو بالا میکنی آسمانو میبینی چی میبینی تو آسمان ماه؟ ماه نورانی بعد ماه یه ستاره هم بالای سرش، که ستاره سرعی نورانی آدم خیال میکنه این صفحه آسمان هم یک شجاعی یک رزمنده هست شمشیری به دست گرفته داره میره که ما در تاریکی فقط چهره نورانی او رو داریم میبینیم و به قول خودمون اون شمشیری که برق میزنه اون ستاره که داره یعنی روی زمین انقدر گرد و خاکه فقط ما یه آدم زیبارو رو میبینیم که رنگ یعنی چهرهش داره برق میزنه قمره و شمشیر دستش که داره تلو تلو میخوره و تلعلا میکنه اینو اینجا ببینیم آسمان هم ماه رو میبینیم و اون ستارهی که بالای سر اوست که همون ستاره سلیاست دیگه چیز دیگه نمیبینیم تاریکه این دو تا. حالا آیا واقعا قصدش اینه که گرد و خاک تشبیه کنه به شب تاریک قصدش اینه که این شخص رو که در دل گرد و خاک و تاریکی میدان جنگیه تشبیه کنه به ماه آسمان آیا قصدش اینه یا قصدش اینه که مثلا شمشیر دست او رو کنه به ستاره سریا اصلا این نیست کی تا حالا تو عمرتون دیدید که به ستاره گرد و خاک مثل شب شده یه زیبارو چهره نورانی او دیده میشه و یه شمشیرش اون بالا همشب تاریک ماه دیده میشه و ستاره بالای سرش که ستاره سرعیات آدم میگه این دوتا چقدر به هم شبیه حالا نگاه کنی و تراهو و میبینی این آقا رو فی ظلم الوقا ظلم جمع زلمه تاریکی در تاریکی های میدان جنگ میبینی این آقا رو در تاریکی های میدان جنگ فتخالهو پس گمان میکنی او را یعنی تشبیح میکنی او را با فتخالهو قمرن یعنی هو مشبه قمرا مشبهان به نوع تشبیش تشبیه بلیغه یعنی فتخالهو که قمرن گمان میکنی او را ماهی او را گمان میکنی ماهی که یکر را علال الجرال رجال یکر را یعنی یحجوم هیدر کررار یعنی هیدری که حجوم میکنه به همه دشمنان یک کر رو علن که حمله میکند بر مردان دشمن به کوکر با یه ستاره که به دستش گمان میکنی کنی که ماهیست که حمله کرده است بر دشمنان خودش با یک ستاره که به دست دارد. این ون انسان زیبارو و شمشیر و گردوها که میدان جنگ اون طرف شب و ماه و ستاره بالای سر و هیچ کدوم مفرد به مفرد مد نظر نیست و هچه شبه هم حیعته و حصف شده حالا میگی نگاه کنید سورت الممدوح حیعت ممدوح یعنی اون شخص شجاع و به یده هی سیفون لامه و در دستش شمشی درخشان یشق قبه ظلام زلام القبار. که با اون میشکافه که میدان جنگ و میره جده تشبیه شده به صورت و غمره تشبیه شده به یک هیئت ما یشق و ظلمت الفضا که می شکافت ظلمت آسمان رو و یتصل رو به هی کبکبون مزید که به او نزدیک است و متصل است یک ستاره درخشان این هیئت به این هیئت. حالا وقت شبه چیه ظهور و شیعن مزید. ظاهر شده یک شیء بزرگ نورانی یلوه به شیء متلع لن فیزهت الظلام که داره دنبال میکنه ظاهر میکنه یک شیء نورانی دیگری رو در دل تاریکی آه؟ این این بچشبه تشبیه تشبیه تمثیلی است اما بیت وسط که غیر تمثیلی حالا میخونیم میبینی میگه وقال المتنبی به رساق آقای متنبی در مرسیه اینطوری گفته آقای متنبی در مرسیه اینطور گفته میگه که مل موتو و مل موتو الا سارق دق شخصو یسول بلا کفن و یسعا بلا فشل میگه مرگ مرگ ازرائیل ما ملک الموت نیست مرگ مگر یک دوست مرگ مثل دوست میمونه که مرگ و تشبیه کرد به دوست مرگ میاد چی رو میبره؟ اونی که از همه قیمتی تره جان انسان دزد بیا چی میبره؟ اونی که از همه قیمتی تر باشه حالا طلا باشه پول باشه اون اما گفته مرگ مثل دزده دوزد چه چجوری میبره؟ مرگ مثل دزده. مرگ میاد یه لحظه میزنه و میبره جان می و میگیره و میره تا تو چشتوا کنی رفت هم همینطوره دوست خریدار که نیست که وایسته چونه بزنه نه نمیدونم فلان کنه سایی میقاط میره میره پس مرگ تشبیه شده به دوست در این که بهترین چیزو میبره در این که بگید به سرعت میبره بدون اینکه که معتلش کنه. خب در این چیز تشبیه شده مرگ به دوست اما نگاه کنید دوزد دو اومده قید بهش زده مرگو تشبیه کرده به دوزد اما دوزده رو قید بهش زده آخه دوزگاهی اوقات یه دوزدیه مثلا 120 کلوه حالا اینطور بیا تکم بخورد این ور و اون ور هیچی میگیرن چیزی نده اما یه دزدی که دقا شخصو دقا یعنی شدی باریکه شخص یعنی جسمش یه دزدی که خیلی خیلی باریک اندامه دقیقه شخصو و و بلا کفه تو گوش آدم بدونن که دستی داشته دستشو نمیبینی میزنه و یس آه بلا رجل و فرار میکنه یه یعنی در میره بلا بدون که کسان پاشو ببینی یعنی مثلا این دزده یه چیزی شبیه پلنگ صورتیه به سرعت میادو و میزنه می و میبره و تا چشوتو واکنی مینه رفت به یه دوزد چابک دزده چیره تشبیه کرده اینجا درسته که مرگ ازرائیل تشبیه شده به دزد اما دزد قید زده من قبلا قیدو گفتم گفت دزدی که بگید زرنگ، دزدی که بگید خیلی چابکه تیزه یعنی مرگ مثل یک دوزده تیز میمونه خب بچه‌ شبع چیه؟ اینکه بهترین چیز رو میبره، اینکه جوری میبره که تو نمیفهمی تا به خودت بیای می‌بینی رفت. اینجا نگاه کنید موت تشویش شده به اللس اللس یعنی دوست. ال خفی خفیو لهزا این قیدشه. دزدی که دست و پاشو این بدنش آدم نمیره خیلی که لاغر اندامه باری کندام وچه شبه چیه الخفا و عدم و ظهور یک بردن چیز قیمتی دو و به سرعت بردن سه بچ شب‌ها یک است اینا همش تک تک هیچ‌کدومش با قول خودمون یکیشو ایشون گفت دوتاشون من گفتم الخفا و عدم و ظهور تشبیه غیر تمثیلی ببینید بحث تمثیل و غیر تمثیل تمام شد ان الله جلسه بعد اگر من زنده بادیم بودیم و آمدیم این تشبیه تمثیلی رو یک مثال باز برای شما از مثالهایی که به کارتون بیاد و بتونید مطلب داشته باشید از تشبیه تمثیلی و غیر تمثیلی برای شما خواهم گفت درست شد دوتا مثال میزنم که بفهمید یکی از اون یکی اون دوره بشه دست بعد تقسیم تشبیح به تشبیه ضمنی و تشبیه سریع رو با هم خواهیم خوند هم انشان همه شما رو به خدای سبحان میسپرن در پناه حق انشالله صحیح و سالم و پیروز باشید موفق و معید و منصوب خدا نگهد